فصل پنجم اکنون به پنجم افسانه انتخابیه با عنوان ماهیگیر و مرگ دریایی توجه بفرمید سالها پیش در کنار دریایی دور دست ماهیگیری با زن و فرزندانش زندگی میکرد ماهیگیر صبح زود از کلبهش بیرون میآمد، دل به دریا میزد و بعد از اینکه که چند ماهی کوچک و بزرگ سید میکرد به کلبهش باز میگشت زندگی ماهیگیر به همین ترتیب میگذشت که یک دفعه و از, از این رو به آن رو شد یعنی دستش از رزق و روزی خالی شد و از آن به بعد هر وقت از دریا برمیگشت، سرافکنده و سر به زیر بود همسر او که وزن را این طور دید یک روز از او پرسید مرد بگو ببینم چرا یک دفعه اوضاع ما این طور شد چرا دیگه نمیتونی ماهی بگیری نکنه دست و دلت به کار نمیره ماهیگیر گفت خدا ما هم نمیدونم چرا اینطور شده ولی هر طور شده باید از این موضوع سر در بیارم. همسر ماهیگیر که زن نجیب و با خدایی بود گفت البته نباید نگران شد بالاخره روزی آدم دست خداست اما همهت بیشتری به خرج بده و به قسمت های از دریا برو شاید این طرف دریا از ماهی خالی شده. ماهیگیر کمی فکر کرد گفت فکر نمی کنم این طرف تموم شده باشه. حتما علت دیگه ای داره. من امروز روز کنم از علت سر در بیارم. ماهیگیر به طرف دریا حرکت کرد. اما باز هم هیچ سیدی به دامش نیفتاد. نگران و عصبانی روی وایقش نشسته بود که دید مرغ دریایی تنندتون ماهی میگیرند و میبرند. با خودش گفت: « پیدا کردم. همینا هستند که ماهی ها اینجا رو تموم میکنن. باید کاری کنم که دیگه این طرفا پیداشون نشه. و رو به یکی از مرغها کرد و گفت به رفقات بگو که دیگه این طرفا پیداشون نشه وگرنه با تیر و کمون مادرتون رو به عذاتون میشونن. مرغ دریایی که از غذا بزرگ مرغ بود پرسید برای چی؟ مگه ما باقتا چه کردیم مرد ماهیگیر؟ ماهیگیر گفت چند روزی که ای سی سیدی نکردم و جلو زن بچه شرمنده شدم انگار این طرف دیگه ماهی وجود نداره حالا فهمیدم که شماها باعث قهطی ماهی شدید مرگ گفت اینطور نیست من مگه ما چقدر ماهی شکار میکنیم؟ لابد علت دیگه ای داره ماهیگیر قبول نکرد هیچ علت دیگه ای نداره مقصر اصلی شما م دیگه اینجا پیدوکون نشر اگر نه مرگ و دریایی سر تکن داد باشه ما از فردو نمی آیم. برای ما جا زیاده اما تو اشتباه می مرد ماهیگیر که مرغهای دریایی را از آن حوالی تارانده بود خوشحال و خورسند به کلبهش برگرد و همسرش گفت زن مجدگونی بده که وزنمون روبراه شد از فردا مثل سابق اونقدر ماهی سید میکنم که خودت بگی احسن همسرش پرسید چطور؟ مگه علت ماجرا ماجرار فهمیدی؟ ماهیگیر قیافه حق به خود گرفت زیاد عجله نکن به زودی میفهمی فردای آن روز ماهیگیر خوشحال و خندان به دریا رفت و سوار قایقش شد اما به محض آنکه خواست حرکت کند دید داخل قایق پر از آب شده و دارد او را به ته دریا می کشند. به هر کوفاتی بود از قایق بیرون آمد و آن را به ساحل کشاند و دید بله ته قایق سوراخ است و با آن وضعیت امکان ندارد بتواند حتی یک دانه ماهی سید کند نگران و ناراحت قایق را به طرف خانهاش کشاند و صرف‌گنده و عصبانی گفت ببین زن امروز هم که میخواستم کلی ماهی بگیرم این اتفاق افتاد. مثل اینکه خدا با ما لچ کرده. همسر ماهی گیر که از او بود گفت این چه حرفی که میزنی مرد. به جای این حرفا سعی کن هرچه زودتر قایق و تعمیر کنی و دوباره به دریا بری. ماهی گیر با این حرف زنش نیروی گرفت و مشغول تعمیر قایق شد. دو سه روزی طول کشید تا قایق را آماده کند. در آن روز که کار تعمیر قایق به پایان رسید ماهیگیر خوشحال و خندان و سرحال و غدراخ زد به دریا نگاهی به اطرافش انداخت و گفت حالا دیگه این دریا مال منه و هرچی که بخوام ماهی میگیرم. بعد هم زنبیل اش را در آب انداخت و کمی بعد مشغول کشیدن آن به بالا شد چند بار زنبیل را به آب انداخت و بیرون کشید اما از ماهی خبری نشد که نشد. بالاخره درست در آن لحظه‌ای که داشت از کوه در می‌رفت احساس کرد در سبدش یک ماهی افتاده. سبد را از آب بیرون کشید و یک ماهی کوچک در آن دید. در حالی که از خوشحالی نمیدانست چه کار باید کند، ماهی را گرفت و گفت ببین مرغای دریایی چطور جلوی رزق روزی منو گرفته بودن. پس اینجا هنوز ماهی داره. باید برم جلوتر و تا میتونم ماهی شکار کنم ماهیگیر اینجا گفت و جلوتر رفت. اما چیزی نگذشت که آسمان بالای سرش سیاه شد. و ابرهای بارانزا از راه رسیدند این اوزا خبر از رسیدن طوفان میداد ماهیگیر که برای سخت بود از دریا دل بکند و دست خالی به خانهاش برود باز هم پیش رفت این در حالی بود که ابرهای سیاه لحظه به لحظه به همدیگر پیوند میخوردند و باد تند دریا را بیقرارتر میکرد و امواج کوپیکر از راه میرسیدند ماهیگیر تصمیم گرفت به کلبش برگردد اما با خودش گفت این طوفان زود گذره. نباید میدون رو خالی کنم. چیزی نگذشت که طوفان و امواج کوبهگر قایق را سرنگون کردند و ماهیگیر را به دریا انداختند. اما ماهیگیر با هر مکافاتی بود خودش را نجات داد، ولی قایقش را نتوانست نجات داد. قایق به صخره خورد و از بین رفت. ماهیگیر با وضع منگیزی به طرف کلبهش را ناافتاد. همسر ماهیگیر وقتی شوهرش را به آن وزدی ترسید. پرسید چی شده؟ باز چه اتفاقی افتاده ماهیگیر سرفکنده بود. نمیدونم. فقط نمیدونم که همه دست به اکی کردن که من و بیچاره و زمینگیر کنن. نمیدونم چرا چند وقتی دارم پشت سرم بد میارم. واقعاً علتشو نمیدونم. همسر ماهیگیر شوهرش را دلداری داد و زخمای او را بزد. دو سه روز بعد ماهیگیر از بستر برخاست و دوباره از رفتن به دریا کرد وایق دیگری قرض گرفت و دل به دریا زد حالا دیگر دریا آرام بود و خورشید المتاب همهجا نورافشانی میکرد ماهیگیر با خودش گفت دیگه طلاسم های من شکست هم دریا آرومه هم آسنون صافه هم مرغای دریایی مزاحم کار و سیادی من نیستند باید هر طور شده امروز کل ماهی بگیرم و تلافی این مدت رو در بیارم. ماهیگیر با این خیالهای خودش خوش بود که یک دفعه ماهی بزرگی را دید که دارد به طرف قایق می آید. وقتی ماهی نزدیکتر شد ماهیگیر با خود گفت گره کور و باز شد دیگه بهتر از این نمیشه سید با پای خودش داره به طرف من میاد اگه بتونم این ماهی رو بگیرم دیگه نونم تو رو منه تنابی از توی قایقش برداشت یک سر آن را حلقه کرد و مثل هایی که هایی با می آهوی را سعید کنند تناب اغه شده را به طرف ماهی بزرگ انداخت. وقتی خیرش راحت شد و فهمید که تناب به بدن ماهی گیر کرده با تمام قدرت تناب را کشید اما هرچه کرد نتوانست ماهی بزرگ را به طرف قایق بکشد. برعکس، این ماهی بود که یک دفعه چرخی زد و قایق را به طرف نامعلومی میکشند. ماهی گیر که بعد از چند روز تازه سر حال آمده بود و دوست داشت هر طور شده این ماهی را بگیرد این بار مرگ را جلوی چشمان خود دید. هر چیزی که در قایق داشت و فکر کرد میتواند به ماهی زخم وارد کند، برداشت و به طرف ماهی پرتاب کرد. اما اینگار نه اینگار. ماهی بزرگ با سرعت پیش میرفت و آنقدر رفت تا در نزدیکی یک جزیره، قایق را به شدت به صخره‌ای کوبید و راهش را کشید و رفت. ماهیگیر از داخل قایق به بیرون پرتاب شد و با چشمان وحشت زده تکیه قایق را میدید که روی آبها. پخش شدند کلافه شده بود و به قول معروف اگر کاردش میزدی خونش در نمیامد. مدتی همانجا نشست و به بخت خودش لعن و نفرین فرستاد. در همین حال همان مرغ دریایی ناگان پیشباش به زمین نشست. پرسید: «هان چی شده مرد ماهیگیر؟ اینجا چه می ماهیگیر که کار خودش را تمام شده میدید سفره ای درش را باز کرد و از بربختی هایش برای مرغ دریایی گفت. مرغ گفت، مشکل شما آدم اینه که همیشه تا وقتی وضع درآمدتون روبره و همه چی جوره به فکر دیگران نیستید. اما به محض اون که خلالی تو درآمدتون پیدا شد، بلافاصله فاصله دیگران رو مقصر میدونید و به زمین و زمان ناسزا میگید. خدا رو هم که به کلی فراموش میکنید. این رو نمیدونید که زندگی فرازانشی و, و کموزیاد داره. تو هم به محض که دو سه روز به دلیل سر د گرم شدن آب دریا و جابجا جا شدن مایییا نتونستی ماهی بگیری ما رو مقصر دونستی و آبارمون کردی و خودت را هم به دردسر انداختی نمیدونم چطور با این سن و سال هنوز این چیزا رو نمیدونی حالا هم بلند شو همه این اتفاقات رو به حساب حکمت خدا و مصلحت خودت بگذار و دوباره زندگیت رو سر سامون بده ماهیگیر ناگهان به خود آمد و انگار تازه دنیا را شناخته فقط پرسید تو چی هستی؟ چه کسی تو رو فرستاده؟ مرد دریایی گفت همون کسی که تو رو به اینجا فرستاده.